یوم و حجت پرسیش های داغ قایم کردن حجت قبل از قتال قبل از وجود آمدن امارت تنظیم های تقریبا هفگانه در افغانستان در مقابل روسا مصرف جنگ بودند اینا دشمن های موحیدین بودند دشمن های خاص بودند اینا میخواستند که نام و نشان توحید و موحیدین را از سردمین افغانستان نابود بسازند مباحثه سیاسی و تحلیلی در مفاهیم شرعی در مجموع میدیا رسانه های جمعی و مطبوعات زیر اثر غربی ها است. هستند دشمن که علیه ما می جنگند به دو قسم است یکی دشمن است که انگیزه دارد و یکی دشمن است که انگیزه ندارد پین شمب از رادیو صدای خلافت 90FM حطمت, حطمت. احلام آنهم قیام, قیام. و حجات شناونده های مؤمن و مسلمان رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شما را به برنامه قیام و حجت خوش آمدید میگم امید است که میزبانی ما به مسلم خراسانی را بپذیرین در این برنامه استادان گرامی هر یک استاد حمزه خراسانی و استاد عبدالله مهمان برنامه ماستن ما میخواهیم که در این برنامه راجی به فرهنگ افغانستان و جهان صحبت های داشته باشیم امید است که استادان گرامی در این موضوع برای ما و شنونده های گرامی معلومات های خوب را ایراد کنن مییم از استاد حمزه خراسانى میپرسیم که استاد فرهنگ چی معنا و چی تعریف دارد هر کشور و هر ملت دارای فرهنگ خاص هستند فرهنگ افغانستان چی نوع فرهنگ است آیا قدمت تاریخی هم داره یا خیر الحمدلله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي اول اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم در قلم نخست می خايم سلام و احترام خودم خدمت شنوندگان رادیو خلافات و مهمانان عزیز برنامه تقدیم بکنم برادر محترم سوال بسیار خوب و جالب را طرح کردید فرهنگ چی هسته واقعا جالب سوال است فرهنگی عبارت است از و طریق زندگی کردن در یک جامعه گان قسمی که شما گفتین واقعاً در تمام دینا فرهنگ بسیار مختلف وجود دارد مثلا در دا افغانستان خصوص تمام فرهنگا زاده یک شاری جامعان می باشند <تصفيق> مثال بودیم فرهنگ افغانستان از قدامت داره خیش از آریوی ها شروع شدند برای خلی سلسلتن سلسلتن بر مجوسی ها آمد که ها از نامش پیداست مردماتش پرست تو کل رسوم راواجشان آتش بوده بعد ازو به خراسان تبدیل شد که خراسان فیلی با افغانستان تبدیل شد اگر ما کمی آه. تمرکز بالای فرهنگ مردم فیلی افغانستان داشته باشیم این مردم کلش اقشار و های مختلفی زاده شدن که عبارت از مثلا اقوام پشتون هستند تاجک هستند بسک هستند بلوچ هستند تاتار هستند و غیره میباشند فرهنگ هر قبیله مختص بر خودشان میباشند و متفاوت از یکی می میباشند فرضاً اگر یکی از مصالح ما این بتیم که فرهنگ عروسی اقوام پشتو با اقوام تاجک متفاوت تر هستند این مردم عروسی هایشان شون معمولاً در دیارشان درم شون درمو قبیله در درو منطقه شون صورت میگیره ولی از قوم تاجک معمولاً را کش میکنن که می عروسی های خود دا بازار دوتلوس انجام بدن صورت بدن و یک مثال بسیار کوچکی دیگه شب بتیم انتخاب همسر ده اقوام ده اقشار متفاوت تر است. فرزن اگر ایت مسئول ما در یکی از قبیله ها انتخاب حمسر از طریق رفاقت میشن. وره بعضی اقشار و بعضی قبیله های دیگه قسمه میشه فرزن که تولت میشه, میشه و دخوا فرزن دختر تولت میشه د قبلی دیگه وکه دختر تالت میشه به قبلی دیگه اونا مولدن یابلنا با هم جور من که اگر دختر مقلان شد بر و بچید تو با پسر تو دقو کار میکنم اگر از مقلان شد بر تو بالاخرهنا با هم تفاوت میکنن و با هم جور من دختر و بچه ها کلان میشه بازی ها از هم آگاه نمی باشنی دختر و بچه باز به با عروسی کی دیگر انجام میدن <تصفيق> کی خودشه که فرهنگایی دیگه سوالی اگر در این حال ما تحلیل بکنیم که چی قدر دستاورد یعنی در آینده چی چی داره مشکلات ببار میاره اگر زی قسم بگویم فرضا یک بچه کلان میشه اگاه می باشه که هم سر مکی می باشه در این وقت خلاف سنت رسول الله سبحانه این آنجام میتن اونا میگن که ای دختر بنام تو شد وقتی کنها جوان میشن اروسی میکنن اروسی میکنن اول خو افکار و مفک مختلف متفاوت می داشته باشه بعد از که نا عروسی بکنن در آینده مشکلات ۳ سا است و بر ایننا وجوده و اینا زندگی زندگینا خراب میشه فرهنگ از همیج آغاز میشه که نه خراب شده خراب شده خراب شده بالاخر فرهنگ فرهنگینا متفاوت میشن و بالاخره از اصل زاده چیزی که نا هستن او از او از بین مین بالاخره بعضی به مسیحت و به یهودیت بلادینی انجام میه ی فرهنگاییره که یادآوا شدن که در اقوام مردم افغانستان وجود داره و اشاره به زمان آریانا هم کردین عین همین فرهنگ در زمان آریانا در بین مردم آریایی ها هم وجود داشت تقریباً همین فرهنگ وجود داشت ولی متفاوتر ازی بود فرض مردم آریایی ها فعلا مردم اینا منسوب بر اسلام خود می دانند ولی دو وقت ده زمان آریایی ها گذشته از زمان مجوسیان مردم مسلمان نبودن فرهنگ زونا کاملا متفاوتر از فرهنگی اونا فرزند بعضی شانیت بودن که اتائ که عروسی در بعضشان مراوج نبود بایس یک شکل. و از طریقه زندگیی رو کاملا متفاوتتر اززی بود بینوزنا از پرده بین مردها و زنای چ وجود نداشتن و بالااخهنا قسمت گفته مجوسی ها بودن آاتش برسته ها بودن و یک وقت داشتن فرزن م مجی آاتش بررسی بود کلی که زن و مرد با همه ا جا میشدن ازو تجلیل میکردن فرزن نذرا میکردن باوجه می بردن و موجاه که نه آاتش بررسی اونجر بات میکردن مردم ها کلشان جمع می با هم یک فرهنگ خاص خوددا داشتن متفااتتر کاملا از این فرهنگ مردم الله خیر استاد محترم شنیدیم که کدام دین و مذهب را که آریایی ها و زردشتی ها داشتن تقریبا امون دین و مذهب امروز در افغانستان به فرهنگ مبدل گردیده خب استاد عبدالله در فرهنگ افغانستان قسمه که مشاهده میشه اکثران رسومات و انعات فرهنگ های کفری که با اسلام تضاد دارد ترویجی افتاد دری برم ما معلومات بتین که چرا مردم افغانستان از آن متاسر شدن. الحمدلللہ رب العالمین و السلاة علی من باعث به سیف رحمت للعالمین اما بعد برادر ما حمزه الحمدلله در برا بسر اشاراتی بهترینی کرد و ما هم کمک اضافه میکنم در این بارا انشاءالله حسب علم و فهم دانش خود هر قوم ملتی در جهان دارای یک فرهنگ مخصوص از زندگی اجتماعی خود می باشن. فرهنگ به معنای یک طرز زندگی مراوج مانند لباس عادات، اعتقاداتشان می باشند لاکن در خراسان تجلیل از روز جشن نوروز و مثلا جشن روز مادر و روز معلم و روز دحکان می باشن. لکن متاسفانه امروز جهان اسلام تحت فرهنگ اجتماعی یهود و نصارا قرار گرفته. پیامبر علیشانی اسلام در این باره از فرهنگ یهود و نصارا می فرماید لو دخل و جحر زبن له دخلتمو رسول الله صلی الله علیه وسلم می اگر یهود و نصارا در غار سوسمار هم داخل شوند شما هم پشتشان داخل میشوید خوب استاد شما اشاره به تجلیل روزها کردین تجلیل ای روزها که در فرهنگ افغانستان و جهان اجد با اسلام چی تضاد دارد دی باره باید من اضافه کنم که این جشنها و روزهایی که امروز در سرزمین خراسان تجلیل میشه و یا مثلا جشن گرفته میشه اینا سراسر بدین دین اسلام مبین اسلام مخالفت داره جشن نروز که اصلا یک از اقاید هست امروز متاسفانه در بین مسلمانان به بشکلی یک جشن دینی و اسلامی تجلیل میشه و اکثر مسلمانان افغانستان که است بایی معتقد هستن مهم. و مرد زن به جشن شرکت میکنن. بلی. و با, با هر مادر و برادر و خواهر مسلمان اینا میگم که باید اینا از این جشن ها اجتناب کنند چون که یک دین و عقیده مجوسی است و با امروز به فرهنگ امروز به فرهنگ تبدیل شده به فرهنگ حالی افغانستان بلی بلی. و امچنان روز مادر است مادر بلکه غربیا یهود و, و نصارا اهانت کردند حقش زیر پا کردن باید. و در هر جا توهین مادره می کنن و اسلام الحمدلله به مادر بسیار یک مقام بسیار بلند داد بمانند یک ملیکه و یک سیده و مالک خانه می باشد همگی پسر و اولاد و مثلا دختر و پسر و نوازوها کل لگی تابع زیمی تا آخرین روزی حیات شیره چی قدر حضرت شانو ولكن در غرب وقتی مادر پیر یا کمکی از دست پامیفته، آنها را در های خاص میبرن و آنها به چهاردهمون جا می هاستل و برشان یک مزدور می‌گردد. و هیچ کسی برایش کدام کادر خاص را کال نمی‌باشند. اونجا برشان مزدور می‌گردد و مزدورها برشان چی می‌کنند؟ نان و تهام و رو تهیه می‌کنند. در هاستل به چهارمون جا از همه های دنیا و از قدر غلظت دنیا چی محروم میشن؟ محروم میشوند. د ما هاستل زندگی میکنن تا کی مرګ پر شان و سالانه یک ګل بر شان می وره مثلا بر شان یا ګل می خلاص دیگه دیگه روز مادر او صحه که مادرس لیکن درکه که تنه ها که مادر په مول کردن زیر پو کردن الحمدلله یګانه دین اسلام اسلام است که مادر را بسار قدر و قیمت خاص داد الحمدلله در اسلام هر روز روز مادر تجلیل میشن الحمدلله در هر روز الله جل در قران و د ام مهربان اسلام اها مادر الحمدلله در هر جا توصیه کرده که باید قدر عزت مادر را کن و احترام مادر داشته باشین و با... با حتی در م... به حضور مادر و پدر یک افق قدر هم نگین باد که تا دلشان یک یک خراش احساس شود از جانب پسر و اولاد و خانواده امه. و همچنان روز معلم است اینو بلکه همیشه گردار ما ببین که در کابل و دمه جهاد و پنتونه مکتبها بلککی توتهینی چی میکن احترامی می در مقابل معلم چه احترام قائل نیستن به معلمین بلکه معلم کسب در دین اسلام الحمدلله الله بسیار عاحزات و مقام خاص داره، در الحمدلله و اسلام به نسلها ها توصیه کرده که باید قدر معلمکنه به مانند پدر و معلم در دین اسلام مانندی یک پدر و مربی خاص می باشه همچیرونن در افغانستان روزی به نام زن و به کان هم میشه و در حقیقت غربی ها و اروپا ها حقوق زن را زیرپا کردن و زن در نظر از به مانند یک حیوان است یک حیوان که از او همگی استفاده میکنند بله و حتی الله جل برای حفاظت نسل ها زن را بسیار یک مقام خاص داد و ایرا از همگی دست های دست های خائن ها دست های الله جل اینا را را محفوظ کرده و همچنان چقدر که روزها و جشنها و روزهایی که تجلیل میشه در در دنیا همه گی سراسر بدن اسلام مخالفت داره. یا که تو روز و یا جشن نمیادی که با اسلام چی داشته باشه. با کلک داشته باشه. بله. جزاک الله خیر استاد محترم در این باره بر ما معلومات های را ارائه کردین که روزهایی که در افغانستان و جهان تجلیل میشه واقعا با اسلام در تضاد واقع میشه. و اکثرن امی فرهنگ مروجی افغانستان اعظم ادیان و, و مذاهب قدیم گرفته شده خب استاد حمزه شما قبلا اشاره به تاریخ فرهنگ افغانستان کردین که فرهنگ افغانستان قدمت تاریخیش از زمان آریاناست است خب بعد از مدت طولانی نور اسلام در افغانستان ظهور کرد چرا دوباره مردم به همان فرهنگ خادیمشان را کردن. تشکر واقعاً سوال بسیار جالبه قسمی که ما ور خاطر نشان ساختیم بیان کردیم مردم افغانستان مجوسیا بودند اونها شیطان پرست بودن عبادت زنما مسب زنما شیطان پرستی بود زمانی که خلافت حضرت عثمان رضی الله هوا آغاز شد و حضرت عثمان رضی الله عنه خلیفہ سیام مسلم انتخاب شد و لشکرکشی از چندین بار بالای افغانستان تایی که مردم افغانستان از این بدبختی از این شیطانیت نجات بدم برای بار اول بار اصحاب کرام روان کرد و بلاخره دو سال ادامه پیدا کرد تا ای که امی حکومت یا مذهب شیطان پرسی یا مجوسی را از افغانستان ریشکن کنند. بالاخره مردم افغانستان به اسلام دعوت کرد و مردم افغانستان به اسلام دعوت شدند. در قدم اول مردم افغانستان در تمامشان بسیار معاملین و معاهدین موجود بود. شوواره استعمارگر بعد ازی که خلافت خلاف راشدین راشیدین ختم شد اختتام پیدا کرد با خلاف های ها و همچ باز بخره با خلافت عثمانی ها دریجه بر کفار و خصوصن بر شوواره استمارگ زمین زمینه وساعید شد که بالا افغانستان پس لشکر کشی کنن و افغانستان مردمش از دینی که از طرف اصابکنن و رنا داددا شده بود دین حقیقی حققی بود و دی بود که الله رب العالمین برست تش می کردن بالاخره رات تصمیم بری گرفتن که شوار افغانستان از امی دین وحدانیت بلا دینی ساق بن اینا تصمیم گرفتن که چی بکنین؟ بر بار اول انگلیس لشکرکشی نظامی کرد زمان کل کرکششی نظامی کرد چون قبلا ادوارشنه که مردم ماهط بودن ممین دریج موجود بود بالاخره مردم دفاع کردن از حریم دین خود و انگلیس به شکست مواجه کرد با بار دوم انگلیس عملا باز هم لشکرکشی کشی کرد کلشکرکششی نظامی کرد افغانستان وصلاحح تحت استعمار خود قرار داد دری چند مدت تر ترسیپری کردند دیدن کی مردم حضور نظامی نه بلنه هم از یک لحاظ اقتصادی غیر اقتصادی همش لازم دغه اینا نه میتوننه و برنامه که دارن دجه تطبیق کونن بل اخره تصمیم بری گرفتن که ما یکی از د 10 نشونان خود دجه ما بعد انتخاب کنه ما مردم خصمان فریب بتیم که ظاهرا مسلمان ولی باطنن کافر بشه نه تصمیم گرفتن که یک فاجره تشکیل بدن مخالف خود درحال کی نه به بنا مخالفت ندشت اوناو فوج خودشان بودن که دراس امان شیطان که مردم افغانستان بر نام غازی امان الله یاد میکنن ای اصلا امان شیطان است این زاده زادی انگلیس است یعنی استعمارگر انگلیس است ای تولد انگلیس از بینی تعلیم و تربیش انگلستان شده ای راوردن بر افغانستان بر افغانستان وقته کی راوردن بعضی گردش جام کردن بل تصمیم بری گرفتهم انگلیس خود تاسو ته مردم به شکلس مواجی که ظاهران واز افغانستان حضور نظامی خودم قطع کرد و خودش بیرو برآمد در این وقت امان شیطان برنامه ها و استراتیژی انگلیس در افغانستان تطبیق بکرد یکی از برنامه های عمده و مهم امان شیطانی بود که با تمام علمای موحدین بوت اسبن مبارکه همچینه انجام داد در دا قدم نخست تمام علمای موحدین از افغانستان به شهادت رسند و کدام کسایی که واقعا ظاهرا و باطنن ایده عقیده توحید و داشتن میکرد که بالاخره از و از قریجات افغانستان از سوالی ها افغانستان اونا رو بگیرد به شهادت برسند که همچنین انجام داد تمام آهدین از افغانستان تا جایی رشکن کرد و اینا را عقیده مردم نسل آینده که برین بر اینا به مردم رواج کرد که یکی از اکیدایش عقیده ایش عقیده مثلا صوفیزم کم کم بر مردم رواج داد و بعضی علمای رو در اینا جن... نشین ساخته بمی... در جای علمای حق پرست کنه اونا اصلا علمای سو بودن چیزی که اینا درباری بودن چیزی که نه از طریق شا برشنا بیان میکرد و اونمو قسم انجام میدادن. <تصفح> او برنامه دوم عمده ایشی بود که اینا باید زنا را از ایجاب بیرو بسازن که همچنین کار انجام داد قدم نخست خودش خانم خودش با لباس برهنه که مردم جرها و غیره چیزان او رو معرفت دارن به او دارن این رو با مو شکل لباسه برهنه آزاد برامد با خود شاه که خلاف حکم اسلام و دین مبین اسلام است. جایی که شاه سفر میکرد مثلا میرفت با بعضی ملکاز لازه دیپلماتیک سفر میداشت این خانم شاه با شاه هم دو شادوش بود یکی از برنامه دیگهش که نباید با مردم با برنامه شی بود که خانم شاه باید با خانم های افغانستان باید همیش بیبینه و برنامه های خوده تطبیق کنه قسمی که فعلا در حکومت افغانستان حکومت کفر افغانستان خانم اشرف غنی نمیسته انجام میده خودش ده خانم اشرف غنی یکی یهودی است کفار بر اینا پولای رو میته که تو خانم افغانستان بر هر سال حکومتشه بجامع جامع مدنی بنام جامعه بدنی به خانه امن به و غیره و غیره هم بنامی که اینا حقوق جندر مرد شاد دفاتر فاتر با رو جاگزین کنن ده فاتر با اینا یک جا کار بکنن همچین برنامه ها را خانم شاه هم انجام می داد. و مردم بالاخره بلاخره مردم های کم ضعیف ضعیف بوده اونا قبلا نقدیشان توحید نبوده اونا را آسته آسته به اوریانی و به فحشا منکر و ایچی که بالاخره مردم افغانستان پس دین, دین حقیقی که دین توحید بود الله پرستی بود دینی بود که الله رب العالمین باید به با هدانتش پرستش کنه بعد قانون قرآن کریم و سنت رسول الله سن باید اینجا حاکم میشه یه کاملا از بین مردم دور شد و مردم پس چون علمشان کم بود ضعیف و بودن اینا پس با دین گذشته آبایه خود آبایه خود پس سخ دادن مثلا یک مثالشی که این مردم بعضیشان تقریبا ماجوسی شدن بعضی مردم با شرکی آغش داشتن کسی که خودم منصب به اسلام میداند و سو شرکی آغشته شد که صوفیسم و بالاخره بعضی عقاید شرکی دیگر اونها انجام میدادن و بعضی مردمش پس به مذهب به فرهنگ قبلی قبلی آبائی خود که عبارت از ماجوسی بود شیطان پرستی بود و نه بعضی که کس شد بالاخره مردم افغانستان به که فرهنگش نمایان و ووازی است کلش فرهنگش گذاشته از مو مردما و اقشار و نیاکان و آبایشان از اون انجام داد و در عین وقت ای مدت کفار چینگلیس باشه چی باز کفار دگه باشه تمامشان متحدانه بالا وانسان برنامهای مختلف رهختن برنامهای مختلف رهختن تاکه اصل اسلامه که اگر مؤمنین بالا ون کار میکردن که بعد عقاید مردمو پس اسلام کنند اینا با پله گزارف خود پس کشش میکردن کی مردمه از برنامهایشان یک خلا واقع میشه در ساده راه برنامه تدبیر برنامهای مؤمنین که پس اکیدی توحید با وانسان راجب بدن انجام دادم جامده دام جامده ده کفار یکبار انگلیس هملاکت بعدان روس هملاکت که بی عقیده مردم به دگه طرف ساخت داد که لا دینی که دین موجود نیست در دنیا و دین دین کمیونیزم است و این دین موجود نیست هیچ الله موجود نیست ها. مردم این ذهنیت داد بعد از اینا که دیدن که ما با این نتانستن من فقر شدن باز هم مردم خیستن علای قام کردن باز دگه با عملی امریکا شد که مردم هم بیخی عملا نام اسلام که مشرکین در رس نظ به اون یک قسم از دین حقیقی که دین توحید و یکتا تو پرستی بود از این هم مردم دور ساختن بلاخره مردم فرهنگای گذشته ماندن و فعلا هم ببینید که مجوسی شدن. نا وقت به وقت ملی گل نوروز دارن و غیره ملا دارن کی دایجه میرند د دا موجه قبلا به شیطان پرستش میکردن قبلا به آتش پرستش میکردن حالی به قبره مقبره پرستش میکردن اونورا میرن پرستش میکنن اونورا میرن احترام میکنن بلاخره مردم افغانستان از فرهنگ اصلی دین مبین اسلام پس ساق دادن به فرهنگ اولی و انجزذا که الله خیر استادان گرامی ازی که دی برنامه ما را همراهی نودید با امیدی که د برنامه های آینده باز هم ما را همراهی نمایید و بر شنونده ها معلومات های جالبه ارائه کنید خب شنوده های گرامی شما شنیدین که فرهنگ که فعلا در افغانستان و یا در بعضی کشورهای دیگه که به نام اسلام است این فرهنگ که ترویج یافته، ای امو ادیان و مذاهب سابقه بود که از کفار و از یهود و نصارا به میراث مانده بود و فعلا به نام فرهنگ بالای مردم ایران تطبیق میکنه و به میطریقه میخواین که این مردم از دین اسلام منحرف بسازن چون ما در دقایق اخیر برنامه قرار داریم انشاءالله اگر باز هم زندگی با ما یاری کرد در برنامه های آینده باز هم بالای جزیات فرهنگ های افغانستان و جهان بحث خواهیم کرد با امیدی که باز هم استادان گرامی ما را همرایی نماین تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما دوستان گرامی قرار میگیریم شما را به الله عزوجل مسپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برای مادر گفتنی ها و ناگفتنی ها دیار غربت تاریخ هفت جمادی الاول سال 14-13 هجری گوینده ابو علی ادهم قسمت سیوم ای مادر باز پسرت متهم است چرا شاید این پاسخ بدی ای مادر بگذار چند احزه دیگر هم من از زبانت بگویم و پاسخ را باز من بدهم از زبان ماقیت ها نه از زبان الطاف و نه از زبان آن کاری که من میگرستم و تو مرا نوازش می دهدی پستانت را در دهنم می کردی و مرا آرامش می ولی من حال بزرگ شدهامد من آن طفل دیروز نیستم من آن نوزاد خواب خوابهای آرامت را آشفته می ساخت نیستم بلکه من فرا ان انسانی انسان هستم و رسالتی دارم پیامی دارم ولی چی کنم هستم تا در این لحظات زندگی از رسالتم آگاه سازم ای کاش ای مادر ای کاش ای مادر, مادر آن تفل مي مي تفل می بود می و عشق میری و مثل تفل فکر می و در دنیای دیروز مثل امروز پر از مهر و محبتت آگنده می شد ولی آن تفل موجود خود را ای وزن و برای یک رسالت مقدس و ایدیه پایدار می رزند خمگین مباش ما مادر و تشفیش نکن ایدیه هم آن ایدیه فرسوده چند فیل ما و چند متفکر مثل ایگل و مارکس و برتر و این راسل و جانبال جانجاک رسو بیکن نیست که فکر کردن و قوانین را وزه کردند و جمعی از انسانها را به آن فرا خواندند کسی از این متفکری آموزه های دینی را از دستگاه نظام و نظامداری منحصر به پاپ و کلیسا کرد و جامعه را آری از اخلاق وجود آورد کسی دیگرش انسان را غریزه بیش تفصیل نکرد و کسی از این فیل سلفان را و کمان مابیت رسند و کسی دیگرش همه زندگی این سانجا بسیع انصر اولیه زندگی مثل لباس و خانه و نان محدود سا آه آه بر این صفاکان کانو تجالان ای مادر که خود بشر و برای بشر بیرون شده و قانون مملو از خرافگوی ها و گذافگویی ها درست نمودند و به زور آتش و آهن بر بشریت تحمیل نمودند این همه شادوده تصور یک متفکرین و فیم ما نماها از قشر انسانی بود که خود به مداوا ضرورت داشتند و برای رفاه و آزایش و آرامش بشر می اندیشیدن. و نتیجه این شد که همه داشته هایشان محدود به مکان و زمان بالاخره در های تاریخ انداخته شد ولی آنچه که اینها تصور میکردند و در پی آن بودن ما نیستیم بلکه ما فرا اینها فکر می و در پی رسالتی واقع انسان هستیم آری ما در پی آن رسالتی هستیم که اسلاف ما مثل ابراهیم بتشکن و موسی فرعون ستیز و محمد صلی الله علیه وسلم پیامآور و نابود کنندۀ جاهلیت دیروز و تطبیق گر برنامه الله عز وجل در روی زمین و این است رسالت واقعی پایدار عاری از همه شرک و خرافات و گندگی های قوانین بشری که انسان را به یک عبادت الله و نحو بهتر انسان زیستی و زندگی را در جامعه بشری و اون گوبرداری را از بهترین شخصیت انسانی به نمایش میگذارد و این رسالت امروز هم مثل قوانین نو بشر در زباندانی های تاریخ افکنده نشده و منحصر به مکان و زمان محدود نبوده بلکه در این عصر هم مثل روز تحرک می و اوراق سفید تاریخ را از کارنامه ها و خماسه های خود زینت، و آرایش مي بخشد و جوهر و ماهیت خود را حفظ نموده و من حیث یک متحرک انسان را امروز هم مثل دیروز در حرکت می اندازد و ماهیت انسان زیستی را در کالبودش و پیگرش حفظ نموده و رسالت حقیقی است که پاسخ می دهدت به آن مظلومینی که بناحق ناحق هایشان در همه اکناف جهان می ریزد و صدا می زند و کمک می خواهد و جان می این است ای که همان طفل نوزاد سی سال از عمر خود را به سر بزرانی دهد امروز می اندیشه و فکر می کند خود را نارام و بیقرار و آشفته و بریشان می یابد و در قیم مقاصد بزرگ و متعالی می شتابد و می شود و می و میتازدو علی این صفاکان و این و اشغال این اشغالگران و این مزدوران روز که مرهیمت بسته و مسایم تا رسالت انسانی خود را تقدیم انسانیت کنم. پس این است ای مادر پاسخ به سؤال که من از زبان حقیقت هرایه